الله سوره فصلت اعوذ بالله من الشيطاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعظم بنعم الله كبخشان د با رحمت است حامین این قرآن نازل شده از جانب خدای بخشاگنده و با رحمت است کتابی که آیاتش مشروح است قرآنی فسی که برای مردم داناست قرآنی که بشارت دهنده و پشتار دهنده است. اما اکثر مردم از آن روی برمیگردانند پس آنها هیچ حقیقتی را نمی گفتند گفتند قلبهای ما در هجاب است و از آنچه ما را بدان دان غافلیم خوانی های ما سنگین است. حقیقت را نمی شنندیم. بین ما و تو پرده زخیم است. یک دیگر را درک نمی کنیم. پس تو کار خودت را بکن. ما نیز مشغول کار خویش شود بگو من فقط بشری مثل شما هستم با این تفاوت که به من وعی می شود که خدای شما خدای یکتاست پس با تمام وجودتان روش سوی او کنید و از او آمرزش تلبید و وای به حال مشرکان همان کسانی که زکات پرداخت نمی کنند و آخرت را انکار می نمایند کسانی که به حقایق ایمان آورند و عمل کردی نیک و شایسته داشته باشند برای آنها پاداشی جافدانه محیست بگو چرا نسبت به کسی که زمین را در دو روزا فریده کافر می و برای او همتایانی قرار می دهید. او پروردگار جهانیان است او است که بر روی زمین کوههای استوار قرار داد و زمین را با برکت کرد و رزق و روزی موجود در آن را در چهار روز مساوی مقدر نمود تا هر نیازمندی نیازش را برطرف نماید سپس به آسمان پرداخت در حالی که دودی بیش نبود آنگاه به آسمان و زمین گفت سوی من آیید چه بخواهید چنانخواهی و آن دو گفتند سراپا فرمانبردار آمدی پس آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و کار هر آسمان را به آن وحی کرد و آسمان دنیا را به چراغهایی آراست و محفوظش داشت این تقدیر آفرینش خدای قدرتمند و آگاه است چنانچه از حقایق روی برگرداندند بگو شاهد باشید که شما را از ای سائقه چون سائقهی مرگبار قوم عاد و سمود هشدار دادند. آن هنگام که پیامبرانشان از پیش و از پس به سراغشان آمدند و گفتند جز خداوند بزرگ چیزی را نپرستید و آنها گفتند اگر پروردگار ما میخواست فرشتگان را نازل می کرد و ما رسالتی را که به آن مبعوض شده اید انکار می‌کنیم و اما قوم عاد به ناحق و متکبرانه در روی زمین سرکشی کردند و مغرورانه گفتند چه کسی از ما قویتر است؟ آیا نمی‌دانستند خدایی که آنها را خلق کرد از آنها قویتر است؟ آنها همواره آیات نجات بخش ما را انکار می کردند سر تند توند باد باور سختی را آن هم در روزهای نحس و سپرگبار بر سرشان ترستادی تا عذاب خارکننده ای را در دنیا به آنها هرچند که عذاب آخرت خارکننده تر است و کسی به یاریشان برنخی زد و اما قوم سمود آنها را راهنمایی کردیم ولی آنها کور بودن نسبت به حقایق را بیشتر از هدایت دوست می‌داشتند. سرانجام نیز به خاطر دستاوردشان به عذاب کننده گرفتارشان کرد. و ما کسانی را که به حقایق ایمان آوردند و حرمت عوامر الهی را نگاه می نجات دادیم. به ترسید از روزی که همه دشمنان خدا را جمع کنند و آنها را در صفوفی به آتش برانند تا جایی که وقتی به آتش می رسند گوش ها و چشم و پوست علیه آنها به خاطر عمل کردشان شهادت می دهند. و آنها به پوستشان گویند چرا علیه ما شهادت دادید جواب دهند خداوند ما را به سخنبا داشت همان خدایی که هر چیز را به سخن میدارد، همو همون که اول بار شما را خلق کرد و به سوگش باز می گردید. شما اگر اعمال بدتان را در دنیا مخفی نگاه میداشتید، به خاطر این نبود که میترسیدید روزی گوش و چشم ها و پوست شما علیه شما شهادت دهند بلکه به خاطر این بود که گمان می کردید، خداوند بسیاری از عمل کرد شما را نمی داند. و این گمان باطلی بود که نسبت به پروردگارتان می پنداشتید و همین نیز هلاکتان کرد و همه زیانکار شدید آنها چه صبر کنند، چه بیتابین ماگند، در هر حال آتش جایگاهشان است و چون آنچه چه درخواست عف کنند مشمول عف نخواهند شد در دنیا برای آنان همنشینانی نشینانی قرار دادیم که از پیش و از پس آثار اعمال و اعتقادشان را به نظرشان زیبا جلوه میدادند تا اینکه فرمان عذاب الهی بر آنها محقق شد و آنها نیز چون اقوام گناهکاری از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار عذاب شدند زیرا زیان زیانکار بودند اهل کفر گفتند به این قرآن اصلا گوش ندهید و در آن لغو و به راه بیاندازید تا همیشه مسلط و پیروز باشید ما به کافران عذاب سختی خواهیم چشان و آنها را به بدترین اعمالی که انجام داده اند مجازات میکنیم بیشک این آتش جزای دشمنان خداست و برایشان سرای جاودانه محسوب می شود و این کیفر به خاطر آن است که آیات نجات بخش ما را انکار کردند خافران گویند پروردگارا جن و انسی که باعث گمراهی ما شدند نشان مانده که آنها را زیر پا گذاریم تا در این عذاب پایینتر از همه روند این الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزن عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 کسانی که گفتند الله پروردگار ماست و بر این باور استقامت ورزیدند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند که هیچ خوف و یعص و اندوهی به خود راه ندهید و بشارت باد شما را به همان بهشتی که وعدتان دادند ما همه دوستان شما در دنیا و آخرت هستیم و در بهشت هرچه بخواهید و هرچه طلب کنید بَرَاوَجَتَن مُهَیَّا است این پر پرنعمتی از جانب خدای آمرزنده و, آمر و بارحمت است و سخن چه کسی بهتر از سخن آن کس است که انسان را به سوی خدا میخواند و همواره عملکرد خوب و شایسته دارد حال میگوید به راستی من از تسلیم شدگان خدا خوبی با بدی یکسان نیست بدی را با خوبی دفع کن تا دشمنان پرکینهٔ تو به دوستان سمیمی تبدیل شود اما به این مقام و مرتبه کسی نایل نمیگردد جز کسانی که اهل صبرند و بهره از ایمانی بزرگ دارند چنانکه از سوی شیطان دچار ای شدی به خداوند بزرگ پناه ببر زیرا او شنوا و آگاه است شب و روز و خورشید و ما آیات و نشانه او هستند خورشید و ماه را سجده نکنید خدایی را سجده کنید که آنها را آفریده است. اگر میخواهید که او را عبادت کنید اگر آنها از عبادت خدا متکبران سرپیچی کردند بدان کسانی که همواره در حضور فروردگارت هستند شب و روز او را تسبیح میکنند و هیچگاه خسته و معلووب نمی شود. صبحان قدو، صبحان قدو، صبحان... همین که زمین را رام و خاشع میبینی یکی دیگر از نشانه های خداست. آنگاه که باران بر او نازل میکنیم جان میگیرد و گیاهان را میرویاند آن خدایی که زمین را زنده می کند، مردگان را نیز زنده خواهد کرد زیرا او بر هر کاری تواناست کسانی که آیات ما را انکار می کنند از ما پوشیده نیستند آیا کسی که در آتش می افتد بهتر است یا آن که در روز قیامت در کمال امنیت می آید هر کاری خواستید انجام دهید که او نسبت به عمل کردتان بیناست آنها که وقتی قرآن به سراغشان آمد به آن کفر ورزیدند. نتیجه کفرشان را خواهند دید زیرا قرآن کتاب است. هیچ باطلی از غیچ به آن راه ندارد. زیرا نازل شده از جانب خدای حکیم و در خور ستایش است به تو همان نسبتهایی را میدهند که به پیامبران قبل از تو دادند بدان که پروردگارت هم صاحب مغفرت و هم صاحب عقوبتی دردناک است. چنان که قرآن را به زبان گنگ و نامفهوم قرار می دادیم، می گفتند چرا آیاتش مشروع و روشن نیست. یک کتاب گنگ و نامفهوم از زبان فسی، به بگو قرآن برای کسانی که به آن ایمان دارند هدایت و شفاق است. و بی ایمانان نسبت به شنیدن حقایق سنگین است و چشمهایشان نسبت به دیدن حقایق کور است گویی آنها را همواره از جایی دور ندامیدند ما به موسی کتاب آسمانی عطا کردیم اما در آن اختلاف کردند و اگر گول گذشته خداوند نبود کارشان تمام بدانید که آنها همواره در شک و تردیدند. هر کس عمل خوب و ای داشته باشد به نفع خودش خواهد بود و هر کس عمل کرد بدی داشته باشد به زیان خودش. بدان که پروردگارت نسبت به بندگانش ظالم نیست. آگاهی از زمان وقوع قیامت تنها به خدا باز می گردند. بدانید که هیچ میوه از شکوفه بیرون نمیزند و هیچ مادری حامل نمیشود و وضع حمل کند مگر به علم خدا روزی که مشتشکان را داده دهد که شریکانی که برای من میپنداشدید کجا گند جواب گویند اعلام میکنیم که ما هیچ شاهدی برای ادعای خود نداریم آن چیزهایی را که از قبل برای نجات و آرامش خود می‌خواندند، از نظرشان ناپدید شده است و اکنون دریافتند که هیچ راه گریزی ندارند انسان هرگز از تغازای خیر و برکت خسته نمی‌شود، اما هرگاه شر و مصیبتی به او رسد معیوس و ناامید می گردند و چنانچه مزه رحمت خیش را بعد از مصیبتی که به او رسیده نسارش کنیم ادعا می کند این از لیاقت و شایستگی خود من است و گمان نمی کنم قیامتی در کار باشد اگر هم راست باشد و روزی به سوی پروردگارم برگردم پاداش خوبی نزد او خواهم داشت به زودی کافران را نسبت به عمل با خبر خواهیم کرد و عذاب سختی به آنها خواهیم چشند هرگاه انسان را مشمول رحمت و نعمتی میکنیم، روی برمیگرداند و از حقیقت دور می شود و هرگاه شر و مصیبتی به او رسد شروع به دعاهای عریض و طویل می کنند. بگو به من بگویید ببینم چنان که این قرآنی که شما بدان کافر شده اید از جانب خدا باشد چه کسی گمراه از کسی است که با آن مخالفت نموده است؟ به زودی آیات و نشانه های من را چه در بیرون و چه در درونشان به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که او حق است؟ آیا همین که پروردگارد در همه جا حاضر است برایشان کافی نیست؟ آگاه باش، که آنها در مورد دیدار پروردگارشان در شکن آگاه باش که او بر هر چیزی احاته دارد اما انهم فی مریت من لقاء ربهم اما انهم بکل شیح محیم خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه